برنامه خدا دوستان عزیزم سلام شما همکنون دارید قسمت دوم از اولین فصل سری برنامه های گفتگوی هیپاپی رو گوش میدید و امیدوارم که کموفه سابق خوشتون بیاد و از این برنامه هم همونن برنامه قبلی استقبال کنید یک هفته الان از پخش قسمت قبلی برنامه میگذره و ما خیلی خوشحالیم که شما قسمت قبلی رو دوست داشتید دنبال کردید به اشتراک گذاشتید و از همین تریبون تشکر میکنم از همه عزیزانی که کار رو منتشر کردند و به قول معروف ریپوست کردن از محمد امزد عزیز تشکر میکنم بابت اون مصاحبه زیبا و همه هایی که از برنامه ما داشتن باقت فریستایلش از نیمان نیموش عشقان و دوستان عزیزی که نظرات رو رجب مهمون برنامه قبل برامون ارسال کردن و ما داخل برنامه قرار بودم این هفته هم مثل برنامه قبلی با علی رزا کار رو تنظیم کردیم و شما قرار دستپخت پخت علی رو این هفته گوش بدید و کاور برنامه رو هم که طبق برنامه قبلی و برنامه های بعدی مون متروک آرت ورک انجام میده مهدی و محمد رزای عزیز انجام بیدن که کارش شروع به هم مویدوارم دوست کشم مهمون این برنامه ما این است. این یکی از هستیبول های خوب حال حاضر رقم فارسیه و کارهای زیبه ازش منتشر شده و تقریبا همه کسایی که این برمومه که کردن می شنسنش و از مخاطبانشن و مویدوارم که به اون سوال هایی در که تو زهنتون بود در مورد این استعداد خوب فارسی تو این برنامه پاسخ داده باشیم مسابقه خوب و زیبایی شده آمینوارم که دوست داشته باشید خب سلام این عزیز امروز مهمون برنامه مایی خودتو برام معرفی کن و صحبت کن سلامی اگه میخوای عرض کنی بشنبنده عزیز ما در خدمت ما اول سلام عرض میکنم که همه کسایی که مصابه رو گوش میدن من حسینم موزدر سالمه یک یه... کم دیگه هم میشه یه سال که به صورت داریم رپ و دنبال میکنیم یه ماه دیگه میشه یه سال که به صورت داریم رپ دنبال میکنیم حالا چه سوال داریم من در خدمت ببین استعدادی هستی که بین این کارت و کار بعدیت چون الان اولاً یک سالی بیشتر نیست که شروع کردی ولی خب از اون کار اولت با کار دومت از زمین تا آسمون پیشرفت بودی یعنی تون تون اشکالاتو گرفتی و پیشرفت کردی و رفتی بالا راجب این برامون بگو که چجوری این کار رو برای خود ایجاد کردی و چجوری شد که اینجوری به این قشنگی ایراداتو میگیری و همینجوری روز به روز داری پیشرفت میکنی میخوام خب یه نظر لطفتو خب معلای کسی دیگه نه من بگم میگم تو بزن زیر بغل داییت هندونه نه زیر بغلمو ما... ما انو خیلی کار داریم اما کار خوب در نمیاد ولی خب جوره شوخی میخوام بهت بگم ببین اول اینطوری که بخوای راجعش حرف بزنی اصلا بیا اصلا راجع رپ حرف بزنیم چرا که اصلا این اومد رپ شروع کرد کار کنه ببین خب این یه چیزی بود که تو سر من بود خب یعنی خیلی حال میکردم با این سبک موزیک بروس. من از اول که گوش میکردم خفم بود شاید اون موقع نمیفهمیدم چرا دارم رپ گوش میکنم چون این برمیگرده برای خیلی وقت پیش شاید برای سن دوازده سالگی یا سیزده ساله سالگی تو این سن وقتی من گوش میکردم رپو ها حس خفنی به این میداد و جزء افتخارهای منه که من اون موقع کار درست گوش می یعنی یعنی <تص> تو شاید گوش بدی خیلی الان مثلا که بیان یه رو تو رپ نقد کنن نه آقا این فلانی بذار روک حرف بزنیم نه, نه این فلانی آره بذار روک حرف بزنه بیاد بگه آقا الان که یکی میاد بزنه حرف بزن شاید خیلی بیاد بشینه آقا زدوازو نقد کنه هم. بگه نه اینا هممش دوجو پرفواچه میخونن و که این نیست خب هره. ولی آقا همه اینا من میتونم بگم این زمان من این بوده که من از اون موقع نرفتم سمت این گروه. ما از اولش من کارو رپو شاید مثلا من, <تصفيق> من با سنگ 39 پیشرو اون ما خیلی حال میداد او ما خیلی حال میداد بعد منو کارای بهمن دیو من موقع بهمنو خیلی دوست داشتم الان دوست نداری هم دوست دارم با من و، ولی خب آره این باز شد که آقا خب ما بیام که آقا با این موزیک ارتباط برقرار کنیم با این سبک از موزیک آره. ارتباط برقرار کنیم ولی خب بعد یه مدت که خودم خب دیدم میتونم بنویسم خب شروع کردم نوشتم خیلی نوشتم خیلی نوشتم یه مدتی هم شد که من خیلی خواستم این کارو شروع کنم نشود شاید دو سال پیش یا سه سال پیش من خواستم این رو شروع کنم و این هی نمی‌شد و عجیب غریب بود یعنی همه برنامه ها رو اوکی می‌کردیم همه برنامه‌ریزی‌ها درست پلن‌ها رو میشیدیم کار درست سر نمی‌اومد یا می‌گیم بیت لنگ می‌شد استریو اوکی آره. خب من باز یه کم کردیم. من گفتم باز خط فکری شکل تا کار درستو درمون که شروع این کارم خیلی عجیب غریب بود خب من من آهنگساز کارای منو دیده باشیم من همه آهنگساز همه کارام حکمه میلاد بله. با میلاد که شروع کردیم منو میلاد رفیق بودیم ما من و میلاد رفیقای پنج ساله بودیم با رفیقای پنج ساله که بودیم ما هم خیلی با هم میرفتیم می‌اومدیم من نمی‌دونستم اون عشق رپ اونم نمی‌دونست من عشق خیلی اتفاقی روز حرف رپ شد فهمیدیم آقا جفتمونم عشق رپ میلاد آهنگسازی من راب کردم میلادم بعد اونجا من دیدم میلاد شروع آره خ... من بعد دیدم میلاد شروع کرده داره رپ انگسازی میکنه و بعد دلشو زده بود یه جورایی بریده بود من میگم هر کاری میکنم نمی‌دیشه من گفتم واجی تو بزن اولین آهنگی که تو ساختی من روش می‌خونم. خوب... خیلی عشقی. من این فوزه رپ کردن رو میگم مثلا دو سال پیش خیلی مخم بود بعد نشد. بعد منم یکم آتیشم کشید پایین مثلا فیتله آتیشم کشید پایین یکم خورت زوقم که کار نمی‌شه. بعد خیلی رفاقتی با میلاد میگم میلاد یه آهنگ داد من رو آهنگ یه چیز فلبداه توری نوشتم و تو خونه ضبط کردیم که اون شد کار من ترسک آره. یه میکتومستر خیلی خونگی هم داشت با بچه ها زدیم شد من ترسک. خب ببین الان متاسفانه مشکل ما اینه که اون آرتیستی که الان میاد اون تلنتی اون استعدادی که شروع میکنه به کار کردن سه تا چهار تا پنج تا شش تا کار میده بعد میبینه که خوب من الان حالا مثلا 3 تا 4 تا 5 تا اصلا یه چیزی ولی طرفی داریم که میاد مثلا دو تا آلبوم میده این همه سینگل تریک پخش میکنه ولی بعد اصلا میبینه که کاراش نمیگیره فیت میده کاراش نمیگیره و بعد خدافری میکنه و اون خب انگیزه که داشت رو از دست میده این اصلا برای چی همچین اتفاقی میفته توی این مارکت بگم خب ببین اینو بعد بعد اون حال فردی که داریم اما آوای ایکس که داریم سوال میذاریم چرا رپو شروع کرده آره. شما آگه این بیوژلو ما میگم دنبالش تو دنبال چی بودی رپو شروع کردی؟ میگم دنبال شهرته بودی؟ دنبال این بودی که بهتره کی؟ میگم اسمت بیفته سر زبونا. دنبال این بودی که مثلا تو ماشینای جردن به بالا پلی بشی، پلی نشودی. چیه داستان؟ دنبال چی بودی که بهش نرسیدی رفتی؟ به شخصه برای این برای اینگ، برای خود من رپ یه رایوت که آقا من بتونم خودمو تخلیه کنم. آره. چه شا... کلیشه‌ای باشه حرفا. ولی خب واقعیت همینه. شما همیشه بدنی. ولی خب برای یکی مثل این رپ یه راه فرار بود یعنی من اگه نمی نوشتم دیوونه میشم آره یه عشقه ببین رپ و هیپپ یه جور یه چیزی. چیزی که کسی که بخواد بره دنبالش باید تو خونش باشه وگرنه که اگه هدف شورته باشه تو خونش و. باشه که ببین تو خونش باشه که رپ تو خونه عشقی نیست خوب. بلی تو خونه همه هم هست آره. میجمیم تو خونه منی که ربط دارم میخونم تو خونه تویی که داری رب گوش میدی و داری کار میکنی مصاحبه میگیری و بالاخره یه گوشه کوچیکی از این فرهنگ هست نه آره رپ سبک زندگی از همون عشقی که رپ سبک روز زندگی شده یعنی اون علاقی که من به هیپ دارم این شرارتو برام ایجاد میکنه که من بیام مثلا همچین کاری رو انجام بدم حالا باز هر کسی آره. تو نقش خودشه دیگه تو اون چیزی که خودش استعداد داره فعالیت میکنه خب آقا ببین درستشم هم همه ببین من همینا میخوام مثال بزنم مثلا هم کار اول بگیریم ببین کار اول من خیلی اشکی جام شد آره. ببین شما باورت نشه ما تو خونه داشتیم ریکورد میکردیم چهار ساعت ریکورد زراکه متارسک طول کشید امه. چه خبرم اگه چهار ساعت ما کارو ریکورد میکردیم یهو یه نون خوشگک کوچه رد میشود صداش گرفت <تصفح> بعد ما آخرش شویی شد که رفتم خیابونو بستم آجر گذاشتم خیابونو بستم کلیم فوش خوردم دعوا شد ولی بالاخره ما تونستیم نیم ساعت خیابونو ساکت کنیم یه کار زبط کنیم آره. همینجوری بعد همونجور عشقی همون شب تو خونه با بچه‌ها میکسام رو زدمو پخشش کردم اصلا فکر پخش نداشتم عجیبی عجیبش این بود فکر پخش نداشتم یعنی اینجور دستگرمی بود اولین بیت هرفه ای که میلاد زده من گفتم آقا مثلا مصرم... میلادم دل شده بود فهمم گفتم آقا اولین بیتی که تو زدی و من روش میخونم آره. کار جمع شد بعد خیلی جالب بود ببین اون موقعی که من کارم از ترس شاید سه هفته بعد این بود که آپدیت چنل رو تلگرام اومد آه. برای بعد... من خوب بود یعنی میبین ها تازه چنل ها رو زده بودن انتظارا بالا نبود با شاید میتونم مثلا بگم با منو درصد به یقی میتونم بگم من اولین استعدادی بودم که به اسم و هشتک استعداد تو چنل های ربی کارم بخش و خوبم جواب امید. گرفتی یعنی با این کاری که دادی به نظر من که بازخورد خوبی رو گرفتی خودت حالا خودت نظرش چیه؟ من راضی هم. من من چه تو بگو یه میلیون نفر چه بگو یه نفر آره. یه نفرم گوش بده من اون یه نفرم گوش نده من کار خودم اخه میدونی آه. واسه الان چیه قضیه همه میان پیوی من میگن که تو رو با استعدادا مصاحبه میکنی میگن بابا استعدادا الان باید باشون مصاحبه بشه اون کسی استعداد باید تحویل گرفته بشه اگه استعداد نیاد سمت ما از استعداد نگیم از اینا حرف نزنیم همون قضیه اون رمق نداشتن برای ادامه دادن و همون معروفیته میشه عشق این آرتिस्टای فعلی ما اینه که شروع کردن دقیقا همینه ببین یه چیزی من اینو بگم میخوام ببین. اصلا از سوالات مصاحبه ای در بیاد ما الان داریم اونجا گفت می‌کنی ما هم دیگه ببین اصلا واجبه استعداد لوس شد ببینم قبول داری یا نه <تصفيق> لوس شد ترپ فارسی واجبه استعداد اولش خوب بود بعد دیگه از فردا همه آقا من به خودم نمیبینم استعداد الان واش استعدادونیه که استعدادونیه که, که یه ترک بده انقدر به ما زدن استعداد استعدادونیه کی بیا تحول ایجاد کنه آره. استعداد استعدادونیه که آقا یه ترک داد انقدر تحولی ایجاد کنه صدا کنه میگی چی میگم اره دیگه به چون کسی که استعداد نداشته باشه آه. کارش هم آره. نمیگیره دیگه من به خودم هم نه آقا من به یه نسل سعی که آقا تو به عنوان استعداد میگه کار کاربلد میگم کسی که آقا بلده, بلده کارشو بکن یعنی حتی حداقل استانداردهای یه ترک رو داره ترکش حالا به دل میاد به دلم میشینه استعداد لوس شد دوست ندارم به هر کسی بگیم استعداد آخو من اصلا خودم استعداد نیستم میریش میگم ببین این راه خیلی راه سختیه قبولم دارم ببین من خوب شاید با دست خالی کشیدم بالا ببین یعنی من برای از اولین ترک تا آخرین ترک هزار تومن خرج پخش نکردم خب همینشم هم درسته همینش هم درسته چون اصلا آرتیست نباید هزینه پخش بده ببین بوسه آرتیست هم حرف هست نمیدونم دقیق کرده باشی من تو ته ورسایم که تو راک کف خواب میگم آقا نمیخوام آرتیست باشم همین که این باشم برنده آره دیگه دوست آرت مو اینه یه واژه رو خیلی بولد میکنیم مثلا من میترسم از روزی که یکی به من بگه آرتिस्ट میترسم خودم گم کنم میترسم مثلا این آرتيستا بشه آره غرور بگیره آفه من من خیلی حال میکنم با اینی که الان هستم قبول هلحبه. دارم میتونم کامل درک کنم چیزی که میگیره <تصفح> خوبه که میتونید درک کنی و این خیلی خوبه کاش اینا همه بتونن درک کنن آقا تو وقتی به یکی بحث آرتیست آرتिस्ट می‌زنی این حقو بهش میدی اون بیاد پست چرت و پرت و توهین به مخاطب بذاره ولی تو باز بری زیر اون پست قلب بذاری بله میرز میگه من داره بخواد توهین می‌کنی الان آخه ببین الان مثلا طرف میاد بولد میکنه میگه که حالا نمیدونم نقل قول میخواد بشه به رسانه خاصی ولی خب همین اتفاقی رو من دیروزم دیدم روزهای قبلم دیدم طرف میاد میگه که بهرام چرا مثلا بهرام 100 نو... مثلا 90 کافالوور داره 500 مثلا وحید خضایی 500 چ کافالوور داره خب برادر من عزیز من بهرام ه... اصلا شعن این دوتا با هم دیگه یکی اون یک آدم لوس و مسخره بهرام یک آرتیست بزرگ طبیعیه که ۴ نو... تا بچه ای که رفتن قید خایی رو مثلا فالو کردم بیا رو بهرام رو دنبال کنن و اصلا این یک بحث مسخره که الان همه رو داره وادار میکنه که خب تو اگه میخوای بخونی باید شهر به شهرت دست پیدا کنی نمیدونم باید همه بشناسنت کارات بلد بشه منفجر بشه که اصلا الان همین بحث هم میدونیشه به قول معروف از ماست بر ماست این اتفاقا میفته خودمون میگیم رسانه هامون میانی این حرفا رو میزنن بعد ته دل اون کسی که داره کارو شروع میکنه هم خالی میشه و اصلا ببین دقیقاً ببین بحث اینه ببین آقا من به عنوان این حالا من تو اسم بهرامو میارم خب مثلا حالا میخوام اصلا خودم بگم ب... میگم مثلا خوب ببین من میخوام بگم آقا من عین شاید اصلا این حرفو بزنم بگی داره این حرف رو هوا میزنه ولی خب من عین شاید پیج قبلی که میخوام رپو شروع کنم من یه پیجم 17 در تا داشتم خیلی شیک میتونستم همون پیجو بکنم پیج کاریم آدمایی که خب چند سال من اونجا میشناسن و خب یه تپ طرفدارم خیلی میرفت بالا ولی خب من این کارو نکردم اونم یه پیج از صفر زدم اورو این پیج بره عین اون پیج رو تو خوام بستم دادم به یک دیگه <متحدث> من خیلی حال می میکنم 300 400 نفری که تو پیج اینستاگرام من هستن آخو اینو بخاطر عین اومدن اینو عینو میخوام این خیلی خفن تره آره دیگه میریش میگم ببین شاید تو مثلا همین اصلا بریم بههرام بگی مثلا خیلی خنده داره بریم که دوستا ری جای غذایی باشیم مثلا 100 درصد اصلا همین چون... <تصح> <تصح> <تصح> خیلی مسخره <متحدث> این حرف خیلی مسخره این حرف The... به رپ ما که مسخره اره اینا اینا جدی ها چیزایی که تو داری میگی بحثای جدیه که باعث واجبهش فکر کرد ولی همون مسخره و خنده داره و اینا میدونه به چی برمیگرده اینا دو تا دلیله یکی که مخاطب نمیخواد بفهمه اره خب مخاطب نمیخواد بفهمه که آقا شأن تو به عنوان مخاطب بابا تو خیلی خفنی تو مخاطبی تو نبودی این آرتست نبودی اره بفهمه هیچ میگن ببین ما مخ کلی وقتا شده که مثلا بخو صورت خیلی اتفاقی رفتم تو دو شخصی تو بین ممبرهای چنلم میگشتم پس mm -hmm. رفتم دیدم آقا این عکس پروفایل این آدم مثلا تکست گرافیک کار منه داشم مثلا اسمش که گذاشته یه تیکه اسم منم هست پس نوشته لیل عین میدونی چی خیلی به آدم حال میده دیگه خیلی حال میده حال میده چه این اصلا عشق بازی بنو مخ شده خودم بهش پیام دادم گفتم داداش تو فکر نکنی طرف داره من یا من خودم طرفدارتم تو خیلی خفنم طرف کلی کیف کرد این رابطه دو طرفه خی... بین مخاطب و اون کسی که داره کار میده به نظر خیلی باحاله و اصلا این خودش میشه آره، انگیزه این همینه که... آره این هم که من می‌ترسم از آرتیست شدن آره می‌ترسم خراب بشه این داستان این خیلی خوبه من خیلی راضی هم جبه قشنگی به یکم بحث رو بیاریم چون بحث الان به جای خوبی کشیده و فهم خودم دیگه تموم شد این ما واسکی داشتیم رجبی صحبت میکردیم بریم که راجب خودت صحبت کنیم راجب کارایی که دادی کلو هم برامون توضیح بده که این کارا چه جوری اتفاق افتاد و اصلا کی اومد چه جوری اومد و چه هم پخش شد برام اعتراضی میخوام بگم بهمن 94 پخش شد دنیاش محدود به وسعت دیگه شسار تیره هر شب و میگه کل عمرش سر پا واساده همه خوابشم هم تو بیداری دیده و حرف بقیه میپاشه رنگ بومه تیره تیر میکشه قلبی که یه چوب پیره دنیاشو زاخت پشت درای بسته دلخوش بکلاقی که از آزادی میگه میاد صداش از چرک زیر سینه نگاه خسته ای که به بومبست و پینه خیلی وقته چشاش به دور دستاست منتظر آدم خوبه است میدونه که میاد انگشتاش سوس و دید آره دون را تو اسما رو بگو من بگم, بگم. تراکه مترسک رو مخاید خوب ها تراکه ما رو یکم توجیبش دادم میگم آره یه <تصال> تی که کیلا چوقیده بود. بود ما که بود ما هم یه چیزی که روش نوشتیم همین ویدیو بیا سل به من توری این کارو مثلاستون اول این کارو بی تو پلی کرد من روش همینج بداهرفتم دیدم به گوشیش زبط کرد تو سمجیدم که 12 دقیقه مثلا شاید کل بداهر شد بعدا بین اونا تیکار رو جدا کردیم قفش خیلی کارو فکر که از خیلی هم. تو خونه گفتم میگه تو بعد همون شبم هم تو همون خونه میکس و مستره شود. این کار رو من اون موقع مثلا هم کار نداده بودم ولی با چند تا این ادبینه رپی مثلا حرف میزدیم من برای یکیشون گذاشتم گفت راجی باشی این رو بده پخشش کنیم با همینجوری دادم رنگ هم شد و اون موقع برای اون سال روزم شد هفتاد که ویو هم خورد تلگرام باز خورده های خوبی خورد بود خفم اون موقع دست زیاد نشده بود. آره الان همه, همه ببینید میدون چه جوری شده کانال‌ها میان می‌ویسن که کار استعداد داری بفرست تو صف. بعد میری می‌پرسی میگه آره داداش ما الان هشتاد تا هفتاد تا ترک داریم تو صف پخش. کار شما مثلا می‌رفته مال دو هفته دیگه. دو مثلا دو ماه دیگه پخش میشه. اصلا اینجوری شده. اصلا این تلگرام یه کاری کرد، همه رو بدبخت کرد. داداش میگفتی. آره خب این شد اینجوری مثلا اون ترک اومد و پخش بعد اون ترک درمان گره که درمان دومین ترک من و دومین بیتی که میلاد زبه بیت بره ورمی دارد گرم مینوزه دو تنه با سخوتایی شهتر پول و پایین زندگیش مزقر از پولا میخواد میشه و دارترف کفشاش خازی خیامون محکم است و مال ادالت میده وقت لفر میشه تو جوان به اون کل میکنه مثلا در طرف شهرش بستش دردق ازگاه. ساش بیدار ش و سیرا میش از سر وطریک که شده خراب میگرده دنبالت چرا سنگید به شووار شاید میگیره دواه شهر می دوا داه نگاهذااهد به فکر دوها چه میکنه گنا روبطن اصلا جدا می بینه شکست اطلا خیرا اونا میدن ندای سکوت پر از صدا هرکسیه چیزی میخوادیم ومثل پیچار خدا خوشت سرسیاهه را میرد تو براه میخوابه به اونیددهیم که یکی کنه کننه میدارش پزیکی دستشه رنگ شده خیار ما چیز سوالاش بگیری دیگه چی داره یه عم که اونم پاشید و رفتلی کرل لحظه میشه واسه ددیم و تنگ به خودش میگه خدا بیا منم بردار با خود ببر هر جا میخوره سرش به سنگ میاد دنیاش به تنگ گرفشه ودشه هنگ برای جنگ و اونم اسفنده نوز چهار پخش شد آره ترک درمان خیلی جالب بود من اون ترک رو میلاد بیتش برام پلای کرد اون بیت تو گوشم آیم وسط می میشد من یه چیزای جستوگوریخته‌ای نوشته بودم. اه. چیزای جستوگوریخته‌ای نوشته بودم راجع به اون کارو و درمان شکل گرفت. درمان خیلی کار قشنگی بود. راجع چی بود؟ اصلاً ازش توضیح شاید... بده. توضیح بده شاید مثلا یکی الان داره حرف ما رو گوش میده این کارو درمانو نشینده باشه. راجع به چیه؟ چه اصلاً چه توش میفته؟ اینو برامون بگو. ببین داره راجع یه جوون حرف میزنه. قدم، میندوزه رو تنه آسفالتای شهر ترک. ام. کار درمان ببین چیزی که تو ذهن من هست ببین شاید من, من این مدل تکست بنویسم من یه بیت تو گوشم من پله میشه شاید من یه هفته دو هفته اینو فقط گوش بدم زندگی کنی با اون بیت تا بتونی روش بنویسی حرفتو بزنی آره, آره آره آره من آره شاید من یه هفته یا دو هفته بیتو گوش بدم ولی پورسه نوشتن من یه ساعته یا نیم ساعت آره نیم ساعت همه افکار و فکرایی که توی مدت دو هفته که بیتو گوش میدادم تو سر منو رو میزنم رو ورق به خاطر همین مثلا من تو نوشتن من زیاد نمیتونه بگی دنباله چی بودی من من خیلی با کار حال می میکنم مثلا جوری هم که خود سخت نمیگیرم به خودم بنیویز پاک کن بنیویز پاک کن تو کاماز میویسی هر نگه؟ هرچی که عشقی باشه آره تو... تو سامسونگ نمیویسی باز پاک شه؟ حاجی نمیم آیفون داره پولامو جمع کردم آیفون خریدم ترسیدم آخوش <تصح> خب نظام اردی باشه 95 آه. نظام اردی باشه 95 فکر کنم یه خیمه شببازی به جایی انداختی خیمه شب ابو اخی ترکه بود میگم چن من اینو خدام از کانالم پاکش کردم خیمه شب ابو ولی این ترکه با هدی عذالوز راجبینم آره من ندیدمش خیمه شب ابوزی رو فکر کنم گوشم ننده آره چون تو من از پاکش کردم آره من کانال پاک کردم این ای همون ترکی بود که رف تو آلبوم رینگ از آوار کمپانی آوار ترکه خیم شب ابوش شاید باورات نشه من داشتم می‌رفتم یه ترکه دیگه رو ریکورد بگیرم تست ریکورد بزنم ترکه خیمه شب ابو من تو مترو نوشتم خیلی خفن بود یه ایده اومد تو ذهنم از بغل دستیم خودکار گرفتم نوشتم اونم دو تا اسکاباد پیاده شد. شدم خودکارشو پس بدم خیلی با من خودکار نداشتم تو متو می‌خواستم ترک بنیسم همینجوری به همین شاید شما <تص> به هرکی بگی باور نشد ولی مثلا اون ترک که من تو مترو نوشتم رسیدم تو رسیدم از مترو پیاده شدم رفتم استادیوم خوندمش شاید که پشت بزنم فکر کنم مثلا برای کار مثلا ده ما وقت میذاره نه وقتی با رپ هال کنی بشه یه تیکه از زندگی جزء زندگیت بشه آب بخوری یه هفته نمیشینی پلم بریزی که من برم دم یخچال آره. بوتیو وردارم تو سه هفته دیگه بعد برم یه لیوان بذارم اونجا آب بخورم میری میلی تو میخوری دیگه قانع شدم همه چی اینقدر قانع آره. خب علاویش خب آره بعد اون ترک رفت تو کمپانی آوار من خیلی حال نمی با با کمپ... الان خب قللم که با کمپانی ها کار کنم شاید اون موقع اگه الانم بود میصم عین بود شاید اصلا قبول نمیخات با کمپانی کار کنم بعد چون همون زدم شدم و چون من ترکو دادم اونا میخواستم پک کنن نمیدم یه مشکلایی پیش اومد کیفیت ترک اومد پایین خیلی اون ترک بد شد می اون ترک خیلی خفن تر از این داستانی بود که خیلی خراب کرد کمپانی اون ترک اره نمیخوای دوباره درستش کنی دوباره جایشو پخش کنی چرا تو فکرام تو فکرم هست؟ برای این خبرارو داری عمو میکشید. شاید برای یه سالگی فعالیتم اگه بخوام یه آلبوم بدم شاید دو تا ترک رو ریمیکس کنم یکی متارسک یکی خیلی میشه پس یعنی عین الان گفتش که برای تو بهمن ماه این دو تا ترک رو پخش می‌کنه. در اینجوری رنگ بود اینجوری وقت ما نگی که فردا بیاین فوش بخوریم. حالا داستان از بذار یه چیزی خفنام بهت میگم. آره. فاز ولی الان درو همین وقت و تایم اینه. خب نظامو بگو اوردی بش نظام. قشنگ دنیا دست رو دست خدا گذاشته میکنه بالا همه رو نگاه میخوانه شید وقتی شب میشه روزا میچرخه چرخ میشه صندوقچه پول باز جیب پول دار دقاقه یه ساز بالای برژا عربا بایه زور دار میندازن جنگ را دست دست سرباز دنبال پرواز میشن در ولی حلاوه اجساز آثارش برجاز سرنگ میشه سردار برده مدال تیم سار عرباب میشه خوش میزن سگ دو اولوش اولوپای نظام آره نظام ترکی بود که خیلی داستان ناشو من ببین نظام بیتش و مهران پانک زده بود یه بیت خیلی دار دارک خیلی خفنی بود من خیلی حال کردم بارد بیتش رسید دست من و خب ما گفتیم آقا چی کار کنیم گفتیم یه ترکی ز یا تا که زد سیستم نوشتیم و من برای رکورد این کارم رفتم استیل فرشا خوب کار همونجا باش با کار شب یعنی من نظام و رو با هم دیگه رکورد کردم نظام رکورد شد و به من یه کار زد تا سیستم اومد بیرون مم. تا تصمیم ما پیرو باسخردای خیلی خفنی داشتم. این کانال‌ها توردیش 95 کلاً این سیستم یک بخشی از رپ فارس یعنی مخاطب رپ فارسی با همین کانال‌ها فهمیدن اساس سیستم چیه. و اون موقعم خیلی بول،, بول شده بود. همین گفتم وای تو فراماسونری نمیدونم از این چرت و پرتا. ببین این جو مریضه. ها. ببین این جوای مسموم و مریض ببین من نمیدونم چه جو توضیح بدم که هم متوجه بشید تو و اونایی که دارین گوش آره. میدن. ببین سیستم یا چیزی که ما داریم راجع بهش حرف میزنیم تو کل ترک نظامو گوش بدی داره یه حرفی حرفیو میزنه خب میگه آجی تو داری چیزهایی رو زندگی میکنی که پلنشو قبلا سیستم ریخته م. خب ببین تو داری توی مسیری رانندگی میکنی اونا رو از قبل راه تعیین کردن پ... آفرین روح عقبات انگار حالای تو فقط فن کنی سرعت 90 تا بری یا سرعت 20 تا بری فکر کن داری چرخه سیستم رو به هم میزنی نذاداش تو باز تو چموس و کندن بری باز داری توی مسیر راه میری خب میگی بابا من همیشه من گفتم مبارزه با یه سیستم مخفی باید به صورت مخفیانه باشه ام. خب اگه به صورت مخفیانه نباشه تو علنا داری دوباره اسمم و رو بولدش میکنی میگوش میاستا شام آره آره ببین مثلا باید توضیح بدم بفهم ببین من آقا من تو کمد خونم یه سیستم مخربی دارم مثال دارم میزنم ولی مخفیه کسی نمیدونه بعد با یه گروه میاد 10 تا دیستارک به این سیستم داخل کمد خونه ای من میادن. و اللهم اصلا این مخفی بود. اصلا کسی نمیدونست اینجا هست. تو اسم اینا آوردی بعد ترس مشه بالا. فهم ملت فهمیدن شناختن اینو. آره دیگه. میزم میگم به مخیچه نگفتم اون ترک آنتی سیستمه. هیچ جا نگفتم. الان فقط اینجا داری میگی نه؟ الان اینجا دارم میگم که آقا اون ترک آنتی سیستم. قشنگه. نکردیم. مشکل همینه و طرف میاد تشتگی کلومیناتی میزنن زیر کارش دانش تو وقتی میزنی کلومیناتی برای اونی هم که ایلومیناتی رو نمیشناسه داری میفهمونی که آقا که این ایلومیناتی تازف هم ایلومیناتی ببین کاری که الان دقیقا داره پوری پوتک انجام میده اسم اسمای یاری مثلا اسم اینو نمیاری کلا نمیخوای بعدت <تصفح> میاد <تصفح> اسم <تصفح> <تصفح> اسم هر رو میاری اسم اینو نمیاری خب باشه ولی خب حالا مثلا میگم آه. بازم همون بهرامی که مثال زدیم از این دستکارا زیاد داره که بعد آدم های مثل همون اون میان سوء استفاده میکنن که میگن آره این ایلومیناتی و فلانه در حالی که خیلی بشینی فکر کنی میفهمی که اصلا کار بهرامی کیلومیناتی داره نهی میکنه از اون کار ببین اصلا ببین چرا من رو تو بعد الان بشیم راجوبه این حرف بزنیم ببین همین این چیزیه که سیستم میخواد یا همین این م. چیزیه که اون فردی که میخواد هاشیه درست کنه میخواد آخوب طرف اومده نمیگم بهرام هر کی اومده یه حرفی خواسته لابلای تارکش گنجونده تو آلبومش زده آره. اگه میخواست همه بفهمن میومد جار میزد پست میذاشت تویت میزد که آقا این کار ایکیلو کی... بوده آره این برای کسی که بخواد بفهمه میفهمه این چیزا من داره فکر میکنه این شنونده الان داریم که خب چرا مثلا توپاک می میومد کار میداد اسم کارشو مثلا میذاشت کیلومیناتی اسم آلبومش میذاشت کیلومیناتی یا مثلا حالا ببین آخه تو بیای توپاکو بخوایم احیاش کنیم ببین خب همینو دیگه بود که ببین آخه توپاک کسی بود که باید مبارزه مستقیم میکرد خب ام. بابا توپاک خیلی فرق میکنه تو خیلی وارد این قضیه شده بود اصلا بحث وارد شدن این به. توپاک صداشو میشنومم میگی چی میگم آه. توپاک لازمه بیاد مستقیم اورزه کنه توپاک کسیه که میتونه توانشو داره بابا تو با اسلحه کلت نمیتونی بری ارتشوی رو با کوشی قلقم کنی که بابا توپاک اون دوشکاوه بود دستش میومد میگی چی میگم قانه شدم خب خوبه که قانع شدی خوب قانه <تصفح> میشید <تو>؟ <تصفح> <تصفح> ببین شب تیره 95 گفتی با همین کار رکورد شدی و فیت بود این کارت اولین کاری که فیت انجام دادی پال روز خوبی شبا همش خوبه اینو نفهمید، اون که رخت خواب بوده میخوای شبا درک کنی. حال وصسود تا بتونی بش نویس صدای سکوتش تیسپانی گوشا تو ورسه ناراحت بکوش دیگه مامانی نیست بکنه نوازشش دوستت نترس یا خواب خوشی بش یا شق غروبش روشنایی رو پس زنی نفرت از چلو روز روز رازی سر به مخ عین تعداد برگای سبز که باد می‌براتش واسه قاضی دست حکم من محکوم میشن به داشتن یک ریه پر دود و حمل سر من اینو میخوام من جور دیگه دیدن روی چهار راهی کودک لنگ لنگ روز من زیباس نه من این میخواستم تو کمی ترس برم داش سکوت بیداد کرد من چه فرهی شهر رفت که بین داد گروسی روزای شب و بیاد برم میخوی تو واسه شب ولی شب واسه تو با این طرا سود واسه پروانه شدن گملو جمعیتینمش دنبال روان فکر خلیل توی تو دست رو پدال سورنگ غر قشن توی زیرق و برق شهر ذهنا کور ولی اول راه اول کاری بود که فی تو تو اولین رپ مباحثه‌ای تو تو چوری رپ فوز بود یعنی 10 بیت من می‌خوندم 10 بیت سیام میخوند باز 10 بیت اسکرچ میرفت باز 10 بیت من ده بیت یعنی جوری نبود که مثلا بگی ورس اول فلانی و ورس دوم دو این اون پاتی اون کار کلاً 10 تا ورس بود 5 تا ورس من می‌خوندم 5 تا ورس اون دیگه 10 بیت 10 بیت دیگه آره آه اون کار کارو شعبم ببین جام شدن کار شعبم من به میگم ساعت تو بخندی این کارت 20 دقیقه جام شد یعنی بیت رزیده بود بیت چه رومسترمنتال پدرام بود فقط فکر کنم درمانو, درمانو تا از 6 ماه قبل نوشته بودیه ازش آهنگش آره دوستان همه ببین اون بیت اومد بعد مثلا ما بیت تو گوش می‌کردیم من خیلی با بیت فاز گرفتم خیلی دوست داشتم رو کار بنویسم ولی جور نمی‌شد یه جورایی آره. نمی انگار یه چیزی کم داشت ترک بعد با سیام امیر که داشتم حرف می‌زدم گفت بیا خب فیتش کنیم گفتم بابا اصلا ورس و کروسش معلوم نیست چه سر این بیت بیاریم گفتم بابا من اسکرچ میذارم ده بیت تو بخون ده بیت من باز ده بیت تو ده بیت من که خیلی خفن شد مثلا ما ده دقیقه وقت میذاشتیم ده بیت اولو من نوشتم میفرستادم برای امیر اونم 10 دقیقه وقت میذاشت ده بیت دوم دو می نوشت برای من باز من 10 دقیقه وقت میخواستم ده بیت می نوشتم که اینجوری کل کارتون کنم. بعد یکی از کارهای مهر نوید و کف خواب بود این ترکت ترکوند هر که دیگ گفت ولی من اینجا خوب نمه رو دو پام مثل برگار واسادم پشت تنظیمم هر زنه می تو دسته بندی چاشیدم تو مرزه هر جا پام نره فکرم که میره هاک یالا پسر سادرش کن دیگه تو گفتشم روش یا بکنم شجرایه رو کلید شجرای کنن رو مو بگن روشان لابات خیلی دیره شاید این مورد زنده نشه دیگه رو پا پس بکشه دل و کنه ازین های دورش هستم بره رفت گورش ما چی بوده این بوزیدو صد باخته واسه اونی سوده که, که خیریت و پیشفگ رسانت جبد فرامی شریشه کنگیرم ار فرسنه خوب خوب در در... از فالت سنم خب خیلی خوب معلوم بگم کف کجا نوشته شد باز شاید تو من بخندی کف خواب رو کاغت وقت نوشته نشد خب پنج بیت پنج بیت فال هایی بود که تو خیامون را می‌رفتم بیتپل نمی‌شد می‌نوشتام شاید تو مدت دو هفته سه هفته من کف رو نوشتم پنج بیت بر... تو خیامون را می‌نستم یا فازش می‌گام ای آره جب... کف خواب راجبش بگو بگو صحبت موضوعشو بیارم بزر... مثلا بزر... بزر... بگم آره آره کف خوابو بیان ببین کف كفخاب... بزر... جالب بگم کف خواب مثلا شاید پنج بیت اول شروع کف تو همدان نوشته شد. خوب هنج بیت وسط کفخاب تو اسفهان نوشته شد <تصالح> بعد سمشه چهار تا بیت شروع ورس دوم تو پارک لاله تهران نوشته شد <تصالح> بعد نصفش تو قدم زدن تو ولیه نوشته شد میدونی کفخاب اینجوری بود کفخاب تدک دنیا دیده ای بود همه جا رو دید حیبه <تصالح> <تصالح> <تصالح> آره بعد بیتای میلاد نمیشه روش انجو حرکت ها نزد میلاد خیلی خفنه میگم میلادم خوب, خوب گرفت میلاد چشام باشه آره. میلاد چشام باشه میلاد خیلی کارش خفنه خیلی میلاد آره. که از اول که شروع کرد با تشکل مریض الان با که... مریض داره کار میکنه آره نه الان میلاد بیرون... میلاد آره میلاد اون سازنده فقط الان دیگه از تو البوم مریض, مریض, مریض بود چون من الان مصاحبه بدیم قسمتی الان میخوام که شنوندا هم بدونن کار بعدی با مدیر مریض یعنی تشکیل مریض و الان دارم راجع بهش صحبت میکنم میلاد هم از آهنگ خوب مریض بود یعنی توی آلبوم انسان آره میلاد آره میلاد با مریض بود تو آلبوم انسان هم بود میلاد هم. بعد که آلبوم انسانشون خب با ما یه مشکلی بین خودمون با بچه‌ی مریض یه مشکلی بین من و بچه‌ی مریض هست ولی خب دیگه رپر دیگه آره ولی خب وقتی کارشون خوبه خوب, خوب کارشون خوبه بچه میاد مریض ماشاءالله آره آذر پنج یک ماه قبل بگو بگو اول بگو آره داشتم میگفتم بعد میلاد اومد امریز جدا شد یا آلبوم اینسترومنتال پخش کرد ام. که اون آلبوم اینسترومنتالش هم بازخورده های خیلی خفنی داشت که حتی من دیدم تو توییتر کابوس کابوس شیر کرد آلبومو آره بعد آره میلاد خیلی دمشگرمه یعنی من بوده که بودم یعنی اگه میلاد نبود شد منم میگوشتم که آره میلاد خیلی خفنه و خیلی جالبشم هم میگم اینه من و میلاد سال سالوت با هم رفیق بودیم و وقتی همینگره میدیم من جای فوتبال هست میزدیم نه من میدونستم اونو اشق نه اون میدونست رپم که <تصفيق> بعد خیلی اتفاقی فهمید آزر 95 شهرزاد منتشر شد ماه دفتی هنو روبرون تصویر تخت مات آینه ای که میدونه شکستن تقدیر شر بار واسدادم جلو دیدم باخ دادم بی خود حادست گشنه عدد بود و واز رقم میخورد هنگاه نداره فرق فقط جای من و تو که باز عوض میشد خودتو جا زدی تو من فاصله رو دیدی فاصله گرفتی تو جا زدی تو زرد گفتی کل دنیا زرده دستاتو بیار درده درست کنم سمتت گفتم بهم خزون اللایهبلکای سردت وقتی اون چش شسته کوشر چی چش سبز باز شبوط تنها پاکت نیم من منامد کردن ولی از خود صبح پ شهر تو خوابن میاره یادم که بوم این شهرم دیده بود رنگ آدم اگه رنگی هستن دیدم فیدایی که به سیاه ها میخندن روح دادن رفت و خودشون بردنم دنبال ظاهر بانت درون پاچیده حاضرنی کسی. بده دل و دلش بیشینه قصه بگه فردایی که پارک و پرشنه کوسه و عشقو نره زیر سلطن حزیستر نماشن انقدر اونو که لختن سفید بمونه قلبا شهرزاد, شهرزاد یه طرح که آندیلیز شهرزاد یک سال قبل اینکه پخش بشه جمع شده بود. اگه دقت کرده باشی تو هم آلبوم اینسترومنتال میلاد بیت شهرزاد جز اینسترومنتال های میلاد بود یعنی نم بیتو میلود برام زده بود من این جمع کرده بودم که بعدا گفتم میلود این طخش نمیشه بیا این بیتو بزار داخل آلبوم اینسوترال بعد اینو به صورت میکست بخشش کردی یا نه بازم همون پرود چیزو زدی میلودو زدی به میکست من نگفتم میکسپ ولی خب چون از این قبلین بیتو برام بود ولی خب فردا میگم رابطه بین من و میلود من شاید فاز بگیرم از میلود فردا اینسوترال پخش کنه رو همون هم بخونه میدونی آره دیگه رفیقی دیگه آره دیگه شع... آره شهرزاد شهرزاد اگه دقت کرده باشی از سالش با کف خواب فرم کرد <تصفح> شهرزاد من میگم شهرزاد خیلی باید تخش میشد یه ترکی بود که باید شد من خیلی رو مخمه بعضی چیزایی این اجتماع آره. شهرزاد یه ترکی یه کار دلی بود اصلا معلوم بود از اون فازی که تو کار هست آره شهرزاد یه ترکی دیسلا بود ولی دیسلا با بخ... سبک ما دیگه آره ما میگه عشقی، اقشی آره و به نظر باید می و اگه بیت به بیت اون کارم بخونی میفهمی که اون موقع تو سر این چی می گذشت دیگه رو که پارکا پرشه کاسه و عشق و نره زیر سوال تن سر نباشن انقدر اونا که لختن سفید بمونه قلبو نشه دو بار لمس به به یه معلوم <تصحیح> خب ترک ها تموم شد گفتی دوتا آلبوم در پیش داری یام نمیخواستم بگم ولی گفتم قر قر قر قرار نیست اینا رو بگید من دو تا آلبوم آن ریلیز دارم در پیش نداریم نه <تصفح> اولا که نباید اینو میگفتی دوما هم که اشتباهی زدی داداش خب پس دو تا نداری یک دونه داری ببین یه آلبوم در پیش داری من گفتم تو تا آلبوم آن ریلیز دارم یعنی آلبوم جام کردم پخش نکردم آه خب اینم که قولشو بهمون داده بودی که یه سری از کاراتون بک, بک صدامون پخشش کنیم که اینم هم همینجا گفتم که برای اون هست آره میرم به بازار و ولی خب من برای یه ساله یه تو تاریخ ها رو خوب بلدی متأسف کی پخشو دهمن 94 بهمن 94 اصلا بعد ببین گفتی ما... دو سه هفته بعد از اومدن کانالا این حالا اشتباه تو نگرفتم کانالا مهر اومد مهر 94 کانال اومد مهر اومه آره خب شاید دو سه ماه بود که من اشتباه گفتم آره خب آره. ببین اینا رو هم گفتیم راجب آلبومت هم که الان قولشو دادی بعد آره آلبوم میاد آلبوم میاد ولی خب شاید الان که دارم میبینم اینجوریه وقت کمه چون من دارم روی آلبوم کار میکنم م. که بیتارو سهند میزنه خب بیتارو سهند زد میزنه که خب میکس و مستر کارای منم کلا با من سهند من کارام میشه سهند تو استدیوش جم میکنم سهندم یکی از نعمتایی بود که خدا تو این راه به من داد بعد میداد میلاد آره. سه‌ندم یکی از عوامل خیلی مهم پیشرفت این بوده که خیلی خوب بود یعنی برای ام. یکی مثل من کار کردم با یکی مثل سهند من کارم مثل یکی مثل سهند تو خوابم نمیدیدم باش کار کنم کارش برد... خیلی خوبه کیفیت کارها فوقلاده است ببینیم خب سهند خب جنزه... خودش خوبه کاراش انصفه سهند, سهند فوق ساند حرف نداره اصلا. خب سهند پردوسر آلبوم من امیر خلوته ام. بعد سابقه همکاری با خود امیر بچه های چیری فوق سهند است. الی کارش. آها ببین، بگذاریم کم، وارد همین مسائل رابط فارسی بشیم که باز یه کم کم جام کنیم مصاحبه بر رو. بود ببین، داشتیم میگفتیم، همزاد چند روز پیش از راب خودافزی کرد. مم. و همزاد از دوستای توه؟ اینم ببین می... نه همزاد از دوستای خوبه بونو تو وایس تکو کات میکنم آقا اینجاشو کات میکنم خوبه علاه کلیک کات کن خوبه ببین حمزا چند از رپ فارسی خدافضی کرد و کلا بگو برای چی ببین این همون بعد برمیگرده به بحث انگیزه اول کاری که باهات صحبت کردیم اون چی اول کار من گفتم راجب این استعدادا بود آخه تو بحثی که مثلا میکنی حالا اسم انگیزه اومد اسم انگیزه اومد خب و چرا به نظر تو حمزاد هم جزو اون دستی بود که انگیزه اش از دست خدافیی کرد یا نه بذار حرف بزنم آره بذار بگم حالا ببین همزاد آخه یه کسیه که خیلی سال داره رپ میکنه خب نزدیک 6 سال شاید شیش سال شاید 6 شاید منم بعد 6 سال فعالیت اگه وازه رپ فارسی اینجور باشه شاید منم سم تو دارم خالیشه شاید یا منم بخوره تو زوقم بذارم کنار میدونی چی دارم بهت میگم آخه 6 سال. رشو گذشته سال وقت تو میذاری برای این کار آره. عمرش رو گذاشته خب آره. وقتی 7 سال وقت میذاری برای این کار وقتی 7 سال حالا منم میذونم مثلا اشاین شر تهران کارات ریکورد میکنی خزینه خرجی مرومه خب حق هم میشم میگم شاید منم بعد 7 سال اگر داشی حرف میذاری منم, منم می‌خوام که کلا احساسیه کاملا تابلوی که از دلش میاد و اصلا اون نمیدونم چی بگم راجع بشه که از فاجه های رپ فارسی بود همزاد نباید الان میرفت چون استعداد یعنی استعداد نه آرتیست های نسل سه الان وقت خدافیزیشون نیست میدونی چی میگم خیلی ها میگن که نسل سه رپ خیلی خلوت بودی یعنی اصلا کسی نبود ولی خب به نظر من این حرف کاملا اشتباهه چون ما تو نسل سه های بزرگی داشتیم و بهتره بگیم که مثلا نسل سه بولد نشود ولی خلوت نبود کارهای فوق العاده‌ای و اون کسایی که بعد گوش میدادن نسل رو مثل فرشاد و بامداد و اینا که کسایی که بعد اینا رو گوش میدادن گوش دادن و این حالا مهم نظر تو بگو راجبش که خیلی ببنید. چیز نشه نسل که سه... ببین آخه اینجا دو تا بحثو گوش ببین من بحث حمزه رو تمام کنم به من حرف میذارم وقتی بعد هفت سال وقت گذاشتن آقا آو... میرا نه نتیجه نگرفت دیگه 7 سال چون یه حرف خیلی ساده اینه که من وقتی میتونم قضاوت کنم یکی مثل حمزادو که هفت سال وقتمو تلفه یه کاری بکنم میرم میگم خب بحث رو میبندیم کنار اگه خدا فیزیک کرد محترمه این کمترین کاریه که ما میتونیم بکنیم که احترام بذاریم به نظرش دید. باید بش احترام بذاریم توهین کردن خیلی زیر پست حمزادو خب توهین کردن هست هم همه جا بی شعور داره دیگه آه. دیگه ما هم داریم آره ولی خب بحثی که دومه که کردی گفتی خیلی تخیل اسم داری میاری <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> چرا انقدر اسم داری میاری انقدر جهت میدی به مصاحبه ولی خب جهت دادیم ببنید. دیگه داشم 40 دقیقه صحبت اگه نخوایم همچین حرفی بزنیم که دیگه مردم خوابشون میبره پای صحبت ببین من اسمی که مثلا دارم میارم ما هم حسین جوری نیستش که مثلا بخوام طرفو تخریب کنم داریم راجبه کسی که صحبت میکنیم چون داریم صحبت میکنیم راجبش چون الان هستش توی کار خب آره یا این معقوله که دارم میگم یا مثلا اسم، تو اسم ها رو که بردیدیگه گفتی فرشاده با هم داد مثلا من میگم کار درسته یا این نسل مثل سه من میدونم آقا اوج انتظاری که اینشنوندش داره خیلی فرق میکنه با اوج انتظار یه بچه خوشگلی که کیف و کوکش اینه که آقا تو ماشینای جردن بالا پلیشه. دختره کارشو گوش بدن. خب؟ اینجاست میشه که آقا اسم نبردی آره، به اینجا میشه که این قیاس یکم درست نمیشه. یعنی ما دو تا جبه داریم. یه جبه ای داریم که آقا میاد با هنرش حال کنه. یعنی میاد خوش تخلیه کنه. میاد یه دو نفرم روشن کنه با این هنرش. که بگه آقا بفهم دوستانشه. یه رو داریم که نه آقا دنبال اینجاست دنبال اون اسم هست، دنبال اون شهرت هست، دنبالت میگی میگم دنبالون هم دنبال اون پراپاچه هست؟ آره دوباره من پره پراپاچه هست باز یا باز هاشیه درست کنم ولی خب، آره هاجی هم... <صحيح> <صحيح> <صحيح> <صحيح> <صحيح> اصلا این هاشیه میدینی چیه ما که اونقدر این کسی که بخواد رو گوش بده گوش میده ولی خب آم... راجع به صحبت ن... نکنیم راجع به چی صحبت کنیم بیرین شراجون اصلا ازن... فاجعه این آدم ها فاجعه انتون رب فارس خب آره آره و این اصلا باید اصلا اینا رو باید تخریبشون کردی اصلا هدف ما باید تخریب اینا باشه چون اینا دارن گند میزنن به این کار ببین فضای مسموم این فضای نقدم خراب کرده ببین نقد آره. همیشه باید پیشرفت میشه ببین ما این نقد رو با تخریب اشتباه میگیریم خب ام. یعنی آقا همسنف جماعت باید از همسنف جماعت انتقاد کنن باید بگه آره. که آقا هستم این حرکتی که تو داری میزنی چون تو, تو, تو هم تو این سنفی امکان داره به پای منم نوشته بشه که منم تو این سنف دارم کار میکنم میریش میگه، آقا تو این آره. دید بدی که داری به اجتماعیدی امکان داره به پای من و هزار نفر دیگه که دارم تو این سنف کار میکنن بشه. خب تأثیر داره دیگه طرف میگه خب مثلا میگی من دارم رپ گوش میدم اه رپ مثلا فلانی پروپاچه فلان بابا رپ ما رپ اینور داریم مثلا به قول تو چون اسمشون آوردم دیگه اسم کسی دیگه نمیارم مثلا ما از اینور رپ داریم فرشاد و بامداد و اینا از اینورم یک افرادی دارن به اسم رپ سبک خودشون میدم به خورد مردم مثل همون آقای پروپاچه ببینیم من نمیان نباید باشه خب ببین ما تو رپ آمریکا هم داریم آمریکا هم داریم تو رپ آمریکا ام. ما تو رپ آمریکا لیل داریم ما تو رپ ام. آمریکا تایگا داریم ما تو رپ آمریکا دیزاینر داریم ببین ولی اینا همش مجزا و مشخصه ببین مخاطب اونا انگار میفهمه داستان چیه بابا ما تو رپ آمریکا هم داریم که نیکی میناج 2 میلیون 5 میلیون فالوورش بیشتر از زمین از زمین میگره چی آره ببین داستان اینه با... آخو ببین الان این چرف چی کار میکنه میاد رو بیوگرافیه اینستاگرامش میمیسه که من رب پوش میدم مثلا هیپاب تو خونمه بعد مثلا زیرش میمیسه آرتیست مورد علاقه من مثلا میگم این چون دیگه آدم دیگه خودش داغونه داغونه مثلا میسه آرتیست مورد علاقه من نمیدونم علی بابا یعنی من ایمان نولا فلانی فلانی <تصفح> ببین. خب ببین ف... چه فاضیه آ... اگه دیسلاف گوش میده بگو دارم دیسلاف گوش میده اگه داری ارعر ار گوش میده بگو دارم ارعر ار گوش میدم ببین خب آدم مریض همه جا هست هنرمند مریض همه جا هست ام. ببین مایم ما که شکل میدیم ببین ای... نمیگم من و تو ولی این آدم هایی مثل من و تو که این بستر رو فراهم میکنن تا یکی مثل همین اسم که گفتی اینقدر بول دگوندشن میگیر چی نورا آره دیگه اینو قبول دارم <تصفيق> <تصفح> خب ببین تو نمیتونی راد بگیری آقا شاید اگر 10 تا ادم درست حسابی اول که اولین تراکی که این آقا بهش داد می گفت که این چیزی که داری میخونی درستنی شاید اون روشه غرض میشد مثلا 5 نفر میزدنش خوش پرانا میزدنش می تو <تصفح> خیاط <آقا>. اینا خب عسیم ببین اینا خودشون دارن میارن وسط یعنی این آدمی که دیگه الان مثلا بولد شده تو رسانه‌های رسانه‌های ما مثلا یکی مثل این یکی مثل اون آقای دیگه ریشوه اینا الان بلدن اینا اگه راجع بهشون صحبت نکنی دیگه ادامه میدن میگیری میگم اینا همین که همین حرفای منو تو رو میشنونن حالا خیلی فکر میکنن که خوشحال میشن آره ما داریم اینا رو گنده میکنیم ولی خب به نظر من اون تأثیر منفی هم روشون میذاره که دیگه این کارو انجام ندن یا اگه مثلا خودشون رو مشخص کنن فازشونو مشخصوان به طرف بگن که ما داریم مثلا این کار انجام میدیم نه که خودشونو قاطی صنف میکنن بعد ندونم فلانی میاد دیس میده بعد این ببین چقدر بدبختی داره که اون باز میاد دیس بک میده تنفی که فقط تو کاراش داره حرف مف میزنه بعد میاد دیس بک هم میده دیگه ببین به کجا رسیدیم ببین همین دارم میگم وز الان رب فارسی گریه, گریه کردن داره یعنی بابیشینی گه، من به رچ بگم من دست و دلم به کار نمی <تصفيق> الان هر کاری دارم میکنم با خودم کنار با بابا حرکت خفنی بزنیم یا درک جام کنیم. دیگه مثلا به خودم میگم میگم تو دیگه چه حرکت تو کنه خزینه استادیوم میدینه، هزینه بیت میدینه، خزینه میکسوستر میدی. با خودم میگم میگم برو این حرکت تو رو بزن تو مشتی جام دست و به کار نمی میره. خیلی حق میدم، به خیلی حق میدم که فضا اصلا خوب نیست به خیلی حق میدم هر رب کنار به خیلی حق میدم وارد این بادی نشن به خیلی حق میدم ساکت باشن مگه چی میگن؟ آره دیگه همینه اصلا وقتی دارن میبینن که میگنیشیه تو وقتی میبینی که مثلا مغازه داره بغلت، داره مثلا اینجوری داره کار میکنه داره اصلا جنساشو مفت میده دیگه نمیای مثلا خودت هم کنار اون مغازه مغازه بزنی یا مثلا اگه مغازه‌داری درشو می‌بندی میگه بذار همون اون حق منو که داره میخوره بذار بخوره دیگه چرا من بیام اینجا خودمو خسته بکنم دقیقاً همینه یکم فازو فرسایی چون اگه هم ببین اگه مثلا میگم اگه مثلا این مغازه‌ای که اینوره این همه تجربه داره اگه باز بخواد بره با اون وارد رقابت بشه که باز میبینی همین باز میاد بهش دیسپک میده طرف میگم این کوچیک خودش رو کوچیک میکنه خاطر همینه بعد میگن چرا فلانی سکوت میکنه این سکوت میکنه این کار نمیده خب وقتی وضعیت اینجوریه شما بسترش رو درست کن مخاتبا اوکی کن چرا فلانی از خودش هم از کارم پخش میکنه میگم این داستان همینه ما همیشه حرف از فرهنگ سازی میزنیم برما خیلی جالبه من ام. بچه های بعضی وضعین چندل رو برای میفرستن شما من کم آنلاین میشم من آره یعنی خیلی هم کم آنلاین میشه انصافا آره من خیلی کمال دایم میشم از حال نمیکنم دنیای مجازی باشم شو کارو زندگی داریم میگه ما به اندازه کافی وقتمون هدر رفت کردیم بخوایم وقت دنیای مجازی با بکنیم کلا نواز زندگی کنیم دیگه ولی <تصفح> مثلا سان برام میفرستن یه متنوار من میخندم با او طرف اومده فرنگسازی کنه بعد قشنگ یه عمرتی کنه نوشته میفهمی طرف 13 سالشه بله یعنی تو هستش اینا تو بعد فرنگسازی ما. رفتی خودت الان ماپری بشینی سر کلاس اجتماعی آره دیگه من, من شاکی ام به اون... شاکی ام به اون دبیری که به تو آنتراک داده تو وسطش نشستی متنانه نوشتی میرم میگم یعنی فرهنگ سازمون هم درست حسابی نیستن فقط ادعاست یعنی حالا درست خب من ببین هنوز به یعنی من ده... همیشه میگم میگم این بچهای شل مغزی که مدام میکنن که آقا ما میتونیم فرنگ سازی کنیم فلان کنیم اینا یه مثلا یه کمپینی بذاریم آقا یک بچه سال زیر 18 سال 19 سال ادمین چنل رپی نشه دوستو نمیخواد فرنشازی کنی تو خودت بکشی کنار خیلی خفنم میشه رپ فارسی کمک میکنی مرسی آره. که اینقدر فرهنگ داری که میفهمی آقا عضو این کمپین میشه که بکشی کنار از رپ فارسی گوش بده آخه ببین بعد میدون چی میگه میاد میگه طرف اصلا میاد میگه که خب فلانی توییت گذاشته که به نیست به فلان فلان از هزی حرفا میزنه بعد خودش هم قشنگ قانه میکنه ولی باز ببین از یه طرف یه جنبه دیگه داریم خب حسین به نظر من حالا شاید یکی باشه تو همون سن به, نظ... به قول تو 17 سال 18 سال 19 سال اصلا شاید هم کمتر ولی به قول خودشون شاید به اون درکه رسیده باشن و بعضیشون هم هستن تو همین حالا کانالهایی که میبینی شما هستیم تو این با... <تصفيق> دیگه،, این حرفا دیگه. و بعد میدونیم که اصلا بعضیشون با همون سن نکم یعنی اون درکو دارن و اون چشامه و اون, اون کسیه که آه آه این طرف دارشه اونو هر جا دیدی بگو بیا این یه چنل بزن این میاد تو چنل <تصفيق> اوزفش خیلی هرم که پاپی های دیگر هم من میارم تو چنلش اوزفشن ببین من دارم این حرفو میزنم تو وقتی رودخونه کسیف میبینی من half قد درصدش کثیفه تو دیگه اون سی درصد تمیزه توجّه نمی‌کنی داداش گلالود کثیفه اونم دیگه خودش کثیف میشه میگیریش میگم آقا من میگم آره. اگه کثیف باشه که درک میکنه همین داستانی که من میگم بیا می کار کنیم سم پایین رو رب بکشن کنار اونم میکشه کنار میگه آقا م. من اگه واقعا درکشور داشته باشه برای اینکه به بر رب کمک کنه آقا میگه من میکشم کنار اون 4 تا بی شعور دیگه هم بکشن کنار نداره اگه چی من حقا میگذارم من اینکه میفهمم میکشم کنار اون یه 30 40 نفر بیشور هم بکشن کنار که رپ خوب شود فضاش میگی چرا خوب شه آره آره دیگه اصاسته بچه بازی شدیم همه منتظریم یه آرتिस्ट پست بذاره یه فلونی هاشیه بسازه اون یه توییت بره خیلی بده مثلا اوج تحرک تو رپ فارسی همین داستان باشه می میگم یعنی اوج تحرکی تو آره. که یک کسی مثلا یه توییتی بذاره آره دیگه الان خیلی هم شده آره تو کم ببین یکی نمیاد ببین یه پیامبر رب باش مثلا ببین اینا رو اصلا جم کنه بشوره ببره یعنی ها این رنفرینی بشه دوست نداره اینا هیتلر میخوان اینا هیتلر میخوان اینا نسل کشی میخوان آره <تصفح> <تصفح> نمیدونم آقا خیلی یکم طولانی شد دیگه باسن به جای قشنگش رسید آره حالا میخوايه یه جوری نقطه ای وزار یه نقطه‌ای بذارید 200 دقیقه جمعش کنین نه میخوام اگه حرفی چیزی داری که بزنیم مری نداریم. هر... چون خیلی بس قشنگی شده امروز آره... چون ما تو رول کار قبلیمون فقط در قالب گفتگو بود یعنی مصاحبه بود ولی این الان شده گپ یعنی ما الان داریم باصور با, با همدیگه دیگه رفاقت دوستانه داریم صحبت می‌کنیم و خیلی هم جذاب آره میشه این خیلی خفنه من دارم میگم اینجور بحث‌های کلیشه‌ای جواب نمی‌ده اینا رو بعد رفاقتی ببینید اصلا من اولشم بهت گفتم هیپ هاپ یه هم. سبک زندگیه باید من به کار که بهش نگاه نمیکنم که سبک آره زندگی هیپ هاپ خب، چون تو وقتی بهش اسم کار نگاه کنی کار تعریف داره یعنی تو یه مقدار وقت صرف میکنی و انرژی میذاری هزینه میگیری خب ولی هیپ اینجوری نه. شاید بعضیا به هیپ این بیندیت نگاه کنن ولی من میگم آقا تو از الان باختی اگه بینید داری به, به هیپ نگاه میکنی توش نیا چون بیای خیلی دل سرد میشه اپه میری، میری، فیک میشه آره هیپ هاپ یه سبج زندگیه زندگی. تو سبک زندگیه بابام خیابونه یعنی تو هر دا کاری بکنی زندگی کنی, کنی تا بتونی بنویسی همین حرفی که زدیم ببین آره خیابون خیابونه تو هر بلایی سر خیابون بیاری خیابون همینه یعنی تو نمیتونی مم. بگی خیابون گل و ول وله نیست خیابون گل و ول, ول نیست هر جای یه فازی داره دیگه دا هم همینا دارم هم میگم ببین شاید <تصفح> الان مود شده مثلا میبینی میگم گفت آواز کار میکنم من یه ویدیو دیدم خیلی خفن بود طرف تلویزیون داشت رپ میخوند خیلی باحال بود بعد شاید من یه دو هفته خندیدم به اون ویدیو هر وقت بعد یاد میشد داش طرف میدونی چی گفت اومد گفت رضا عطاران از رپرای نسلیه که ماه چرا چون تو فیلم مثلا خانه دوش سال 85 اومد تیتراژشو رپ خوند چه شان باشه دمش گرم <تصفيق> داستان همینه ببین اینا میخوان ده... آم نباید این سبک آمه پسند باشه یه چی بگم بحث جمع کنم یه رانه روش مقابل هست بلدن راهاشو ببین همین بحثی که زدی من گفتم کار درستای نسل سه نمیخوان اینقدر آره. پابلیک و پاپیولار شدن پابلیک و پاپیولار شدن نون بنر نرخ روز خوری همین است که اشقال اسم پروپاچه هست میگری چی اوره دیگه اگه پابلیکو پاپولار بشید دیگه باید سطح خودت هم به اندازه همه آدمایی که میشنونت پایین بیاری میگیش چی میگی ببین من شاید ایراط نگیرم اگه حد به بعدش آقا کسی که همین داریم حرفشو میزنیم که پیپر رو پچ است شاید راضی کنه اون به 10 تا ساله ای که کیف میکنه با کارای اینو نباید یه ترق دست. اون آره دیگه باید تو همین هولو وادی حرف بزنی بعد میاد بمارد. مثلا همو آدم همو آدم میاد بعد میاد کارا ندارم دونم چی میده؟ کار رفانی میده به قول خوم مثلا کار کلیشه میده. خب بهش راه تو برو دیگه وقتی با همین سبک قبولت دارن دیگه چرا مییه وارد کار ما میشی اینو بگو ببین حالا دی... میگم ببین داستان همینه ببین اینا هم هم داشتن بحث گفت و رپ و این داستان گفتن اینا میخوان یکم آمیانش کنن یعنی میخوان میگن رپ اینه نه اینی چه اینا دارم اینا این اینا دارن میخونن خون میگم اینا میخوان این کاربرسا فید بشن که حالا نمیم شاید شد شایدم نه. <laughs> ولی خب. فعلا که ما هستیم فیلن... داش خیلی خوشحال شدم یعنی خیلی خوشحال شدم از اینکه امروز باید صحبت کردم تو اون شخصیتی که داری مطمئنا آینده خوبی رو در پیش داری و برات آرزو میکنم که همیشه موفق باشی حرف آخری داری من در خدمتم بزن به شنو بندایم خیلی چشام یعنی منم خیلی حال کردم که باز خیلی خفنی بود و هم که نمیدونم دیگه یه روز که به امید روز که انقدر خفن بشه این رابطه یه روز خوب میاد داش می یه روز خوب که حالا بز اون که این حرفو زده بز خودش بیاد ببینیم روز خوب چه جوریه خودش که حالا نمیاده روز ببینیم حالا یه روز خوبش اون پاک شده داش ها حاجی آشیای نکم بازار حرف آخر هم بذارم چشم باشی تمنتون خدسن هم میخوامتون عشق دم بگیم داشت واسه این یک روالی بود تو کار ما اینم حرف آخر منحینی ما قبلا سه تا چالش مطرح میکردیم ولی الان همون چالش اصلیه رو مطرح میکنیم که تو هر تو پاکت های ما بود همون یه دونه بود <تصال> و اونم اینه که مهمون ما بعد برنامه اگه دوست داشت دو یک فریستایی رو برای ما بفرسته که ما جدا از این کار پخشش بکنیم به عنوان مثلا یادگار این برای برنامه ما باشه مثلا سن... اینم که اوکی تو دیگه آره صاحب... چرا که نه کار تمینه آجی اصلا تو بخواهی امسیش میکنیم نه خواهی فریستایل میکنیم کنیم این سای قجمی پرشی <تصال> تو بخواهی دمت هم <تصال> گفت آخییم خوش خیلی خیلیم خوشوقتم. آقا چه خب ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. حدود یک ساعت مصاحبه رو گوش دادید و که خسته نشده باشید. این مصاحبه یک, یک در واقع مصاحبه از بگو چشم. یک گفتگوی دوستانه بود و بیشتر سعی کردیم راجع به مسائل روز هیپ هاپ صحبت کنیم. علاوه بر اینکه راجع به حسین عزیز هم صحبت شد داخل این برنامه دوستان ازتون خواهش میکنم ما اسمانی رو داخل این برنامه آوردیم که الان که فهم کنم داره در آینده برای اون مشکلی به وجود بیاره از همه عزیزانی که اسمشون تو این برنامه اومد و طرفتاراشون من از خواهی میکنم چون ما دوست نداشتیم سراحت برنامه کم بشه و آزادی بیان از بین بره و ما داشتیم به عنوان دو تا دوست با هم دیگه صحبت کردیم و حالا و حالا اسم‌هایی رو هم آوردیم که اون کسی که تخریب شدن که خب حقشون بود چون دلیلی داشتن برای تخریب شدن و اون کسی هم که همین جوری اسمشون رو آوردیم یا بنیکی ازشون یاد کردیم که من تشکر می‌کنم هم از از اونها و روزش میخواهم که از اسمشون توی برنامه استفاده کرد بیشتر از این وقتی تو نمیگیرم فریستایل حسین عزیز هم آماده است بعد پخش این قسمت قرار درار میدیم داخل همون کانال اصال هیپ هاپ اینترویو و ممنون از این که این برنامه بوش دادیم تا برنامه بعدی خدا نمید.